چرا خون جگر در پرهنگ ایران سرچشمه روشنی در چشم در سایر حباس یا در خرد بود چرا خون جگر چشم را رو روشن می کرد مپوم امروزه ما از خون به کلی با مفهوم خون در فرهنگ ایران فرق دارد در فرهنگ ایران خون سرچشمه روشنایی است چرا ما دنبال این هستیم که این مفهومی را که آنها از خون داشتن و سپس در سراسر ادبیات ما زنده باقی مانده است این را بفهمیم تا ادبیات خودمون را بهتر بفهمیم به خون رنگ هم گفته می شود است رنگ در اصل ارنگ است که مرکب از ار و انگ میباشد ار جنبش است جنبش سرعت روان بودن از همین کلمه ار میآید انگ هم دو معنی دارد یکی ننگ نیست مثل مثلا کلمه انقا که به گلو گفته میشد و این مرغ برای این خاطر که آواز میخواند انقا گفته میشد گلو هم گلو و منقار هر تا نی هستن خود کلمه گلو گروه هست که نی باشه حالا به شیرابه این نی هم انگ هم که شیرابه گیاهان هم انگ گفته و آهنگ و نوای نی نیز که باد بود اون هم انگ بود همون این است که با نی تصویر نی آنها محتوای این مفاهیم بوده است و از آنجا که باد نی که همون بای به باشد آذر پروز است این باد که میوزد چون گرم است میگفتند پروز است برای این خاطر سیمرغ هم آزرفروز نامیده میشد چون باد در ابر بود و از آنجا که باد که همان وایه باشد آزرفروظ است با افروختن آتش روشنی میآفریند در فرهنگ ایران روشنی ابتدا به ساکن نیست همیشه پیدایش و زایشی از آتش است یعنی روشنی همیشه بر پایه گرمی و مهر قرار دارد برای همین خاطرم به آفتاب مهر گفته می شد چون که این گرمی رو داشت به همه چیز گرمی میداد. این گرمی مهر بود و اینکه در بندهش می بینیم که از فراز البرز دو رود با هم جفت دنیا را احاطه میکنند یکی رنگ رود یکی وهرود که همون وحدای تی در روستا باشه. اینها هیچ معنای جغرافیایی چنان که در بندهش آمده است و بسیاری از ایران شناسان به پیدایش این دو تا رود پرداختن و تمام جغرافیا را زیر رو کردن به اینها هیچ مربوط نیست بلکه یک فرهنگی است. این ارنگرود اسم دیگرش عرواند است و میبینیم که در معنایش در رغتنامه ها دریای محیط است یعنی همه جهان را فرا میگیرد. این درود عملا تمام دنیا را رو آبی هستند که در تمام دنیا هستند. از این رو تمام دنیا به این معنی دریاست در, در بندهش این دریا می شود دریای پراخ کرد که البته درستش پراخ کند است و در عبستاب به عنوان وروکشاه هست حالا این در گزیده‌های های زادست پرم می که این ارنگ این همانی با خون دارد داده می شود. و این دو را در بندهش می بینیم با هم اصل روشنایی هستند در اونجا پوری رود رد می شود. ولی دیده می شود که اینها اصل روشنایی شمرده میشوند، می شوند ولی این را به تفسیر و تعبیر نمیپردازد. چرا؟ چون که این می شود از خون از آب روشنی پدید می شود این درست ترهنگ ارتایی زن خدایی این تمام آب را به معنای کلیش یعنی تمام شیرابه جهان رو اصل روشنائی می دانست. و این خیلی مهم بود این مفهوم در فرهنگ ایران خون و شیر و شیرابه گیاهان و باده و روغن و اشک و منی و سایر مای درون چیزها همه آب هستن آب به معنای ما وجود ندارد همه این شیرابی جهان آب است آبه اس این نام خدا بود است مهراب سهراب رودابه میدانی تمام این سهراب همه اینها خود را این آب میدانستند یعنی خدا در همه اینها این شیرابه در همه جاری بود خون هم آب است و زهدان نیز آبگاه است و ابر نیز عب آب ور یعنی زهدان آب میبینیم که این درست در بندهش این زهدان آب را این همانی با جام باده میدهد یعنی اینها با هم این, همان... این همانی داشتند این مفهومی را که ما اینها را از هم جدا میکنیم نبود چون که اینها همه آب بودن درست از ابر سیاه بارنده که سیمرغ است این درود امباز با هم فرود میریزند که رنگ خون است و درست رنگیدن خود از همین واجه به معنای رستن است رستان و رویدن که خودش یعنی روشن شدن و اساسا با رنگ آرنگ شدن در این فرهنگ روشنی پیداش میآمد جای روشن است که رنگارنگ باشد که بشود رنگ ها را دید یک ب ب ب از دید ما یک حقیقت حقیقت واحد روشن نیست بلکه چیزی روشن است که رنگ ارنگ باشد که متنوع باشد انسان تنوع رو وقتی دید روشن است وقتی ابکار مختلف هستند انسان روشن می شود نه اینی که با یک فرق با یک آموزه کسی روشن بشود همون گونه خون نیست خون در اساس و نی یا هو نی و هو یعنی به هو هم یعنی به نی همون کلمه نایست یعنی چی خون یعنی نای به نای به یعنی چی؟ نای مجرای زایش است زایش و پیدایش و چیزی که پیدایش یاب معنای روشنی دارد حالا این البته با ریختن خون خون قاعدگی در زن کار داشته است با زن کار داشته است این است که تکبون پیدای شابی از زهدان معنای روشنی داشته است و خون که یکی از آب هاست، طبعا همه بیجگی های آب را دارد و آب در بندهش میبینیم هم تن کردیش یعنی یعنی جسمانی و مادی است و هم وخشا است تن کردی تن معنای زهدان دارد تن کردی یعنی زایش از زهدان جسمانیات و مادیات را چیزهای زاده میدانستند. تن کردی به معنای این است حالا وخشا در متون زردشتی به معنای مینوی و روحانی گرفته می شود. ولی در اصل وخشیدن مثل واکسن آلمانی در اصل به معنای رویدن و رویا بودن و بودن است ولی در فرهنگ ایران معانی متعدد دارد از جمله به معنای زبانه کشنده و اف، افروخته آتشیست که زبانه می این است که درخت که می روید اینها از این رویدن زبانه کشیدن. رو و به فراز آتش رو هم میدیدن چون که آتش ناسوز بود یا در اون گیاخ وخشا بنابراین به معنای روشن کننده و درخشان است این است که خون که بونکده اش جگر است از اونجا به دل میرود و از دل به سراسر تند و به مغز پخش میشود و در مغز تبدیل به حواس یا اندام دانایی میگردد به عبارت دیگر این خون گرم آخر جگر بونکده تابستان هم هست یعنی خون گرم است. آتش در اون خودش دارد به عبارت دیگر از سوراخ ها و روزنه های تن جسم انسان این خون گرم که آتش است، تحبول به روشنایی می این خون جگر است که روغن فتیله های حواس می شود. که در گفتارهای پیش گفته شد، رستم در هفتخان با سه قطر خون از جگر و دل و مغز دیو سیفید که همون زن خدا یا بیدخت باشد که البته نام دیگر این زن خدا خورم یکی جی هست یکی بگرام که در ترکی بیرام شده است این خون جگر و دل و مغز دیو سیپید چشم نابینا شده و تیره شده شاه و سپاهیان ایران را که دست به تجاوز به مازندران زده بودند و بی اندازه خواه شده بودند از سر روشن و خورشید گونه می سازن. این البته این مسئله ایرا که در که کاوس سر کرده است و در داستان های دیگر میاد این بی اندازه خواهی یکی از بیماره های سخت حکومت های ایران بوده است که فرهنگ ایران کاملا بر آن بوده است در همین داستان ها دیده می شود و همین داستان رفتن سرستم به هبتخان برای یافتن توتی که چشم حکام ایران را اندازهخواه بکند بینا بکند چون که اینها در این بی خواهی همه کورند این است که در دوره ما سابقه اش را در این ست سال داریم از همون چون که دیدیم این زن خدا خورم نامش جی هست جی جی معنی زندگیش از همین نام ما میبینیم که این خدای زندگی و عشق و اندازه چون که جی معنای چاینو تراژورم داره این این, این خدای زندگی و عشق این همانی با خون داده می شود چون خون وہونی خون جد یا جی یا شیرابه هم هست جد, جد چون که یکی از معانی جی سمغ است یعنی جد است یعنی چیزی چسبناک و به هم چسبید است یعنی نای به یعنی رگ به که ارتا باشد از خودش این خون این جد رو این چیزی که همه چیزها رو به هم پیوند میدهد پیدایش میابد همه کاریزها، همه کاریزها، ها چون که رگ یک نوع کاریز است، ناد به رود به کاریز گفته می شود همه کاریزها ها نی سرچشمه زایش آب زایش شیرابه ها هست. مثلا گناباد ویناباد بود است. یعنی آب از تاریکی زمین غنات زاییده می شود خود واجه کاریز که کاریز باشد به معنای ریزش از نی هست یعنی کاهو کاهو گاس و کاز و کذا همه اینها واجه های نی هستند. این از که مولوی میگوید موج دریای حقایق که زنعت بر کوه قاو لون ما جوش بر که ما کاریجیم این شیرابه یا جوهر چیزها اسانس چیزها و زندگی که خون و شیر و باده و روغن و روغن هست که حقیقت چیزهاست این شیرابه و خور آب و جد یا جی زندگیست اصل زندگیست انسان هم کاریز حقیقت چون که انسان هم یکی از واجه های نام انسان اوز و از معنوش یعنی نی انسان کاریز حقیقت شیرابه از او بیرمه حقیقت از جان او میجوشد و این شیرابه یا جد یا جیه هست که آفریننده هست درست این شیرابه وجود انسان این جد انگ جد یا رنگ که خون باشد یا خود در خود با جای جان میبینیم جی یان یعنی جای جی جای خون جای آب که این شیرابه است این جد است که رست و از نو آفریننده است. به همین علت در نقوش برجسته میترائیس در قرب دیده میشود که میتراس با بریدن رگ رگ گاب این نخوستینگاب چیست گاب مجموعه جان هاست او به جان گفته همون گی جان است از خون این گاب وقتی که این میتراد بادشنش رگ را میبورد چه برگیو ثبت خوری میدوید حساسا خون که بهونی باشد و به معنای نای به هست که نام خدای ایران بای به می باشد رابطه مستقیم با زایش و پیدایش و آفرندگی داشته است چون نای اندام تناسلی و مجرای زایش است و باجه آبستان که آپوستن آب باشد باشه را بگذارید کنار تن، پوست بوس یعنی نه آب تن یعنی به معنای مجرای آمزیشی و زایشی زهدان است چون که تن به معنای زهدان است از این رو آبسته یا آبوسته به معنای زهدان است و در کردی به بین مائی میگویند که معنای آب نیاست و اساسا در توفه حکیم مؤمن کچ به معنای حیزه است خود کچ نام خود نام این خدا کچ است و در کردی کچینه به معنای پرده بکارت است کچ به معنای دختر باکره است این زن خدا در ایران کچ کچه نامیده می شود و در همه جا دیر کچین نیایشگاه به معنای به نام دیر کچین نامیده می شود کچین به معنای همیشه باکره است مقصود آن است که خود خدای زندگی و مهر خود خدا این همانی با خون داشت جی؟ جی بود خدا سرچشمه آفرینندگی و پیدایش و زندگی انسان میشد و خود واژه جیب در سانسکریت به معنای زندگی است حالا ما در اینجا کاملا ما مفهوم خدای ایران برخورد میکنیم برای ما امروزه خدا در اثر اسلام و مسیحیت و یهودیت و یهودیت و زردوشتیگری و آین زردشتی بیشتر مفهوم شخص پیدا کرده است در فرهنگ ایران خدا چنین چیزی نیست خدا مجموعه به هم پیوسته جانها به هم بود همه جانها که با هم به بندند یک جان بزرگ می شود و این خدا هست خدای زندگی مجموعه همه خونها و شیرابه در جهان بود از این رو دریای فراخ کرد یا فراخ کند این همانی با جگر بنکده خون داشت که در واقع دریای محیط است که همه جهان رو فرا می گیرد. این شاهنامه با این دریا اصلا شروع می شود که ساحل ندارد چونکه این دریا که خطرناک نیست این دریا اصل زندگیست خود خداست این با دریایی که طوفان نوح در روی میدهد به کلی فرق دارد در این دریا کسی غرق نمی شود. در این دریا همه زنده می شود. همه از این دریا می هنجان جذب میکنند و از این زنده میشوند و به حقیقت میرسند ببینید با کلی مفاهیم فرق دارد همه جانها که با هم به یک جان بزرگ میشود و این خدا هست پس ببینید خدا در همه هست خدا در مهر و عشق جانها به هم پیدایش می همه جانها اون چیزی که همه جانها رو یک خوشه میکند به هم میپیوندد یک دریا میکند این از که ما وقتی که در بندهش یا در اصوره های دیگر میبینیم گاب و سیمرغ و در یدانشناسی کیومرز و هم درخت سی شاخه پیکریابی خدا بودن مجموعه جانها یا در این گاب نخستین پیدا پی... نمودار میشود یا در سیمر که خوشه همه اینها بود یا کیومرز که خوشه انسان ها بود یا درخت سیشاخه شاخه در یک درخت سی خدا دارد که اینها مجموعه دنیا هستن خوب این درخت زندگیست. این خدا به این مفهوم همه چیز که جمع همه چیز وقتی به هم پیوسته شد همه زیباها در جهان که به هم پیوسته شد این میشود زن خدای و دین این از همه زیبایی ها همه انواع مختلفش با هم که ترکیب شد این میشود دین که خدای زیبایی بوده زن خدای زیبایی بود. ببینید این مفهوم به کلی ما را این فرهنگ ما را از تمام این ادیان که نوری که خدایان ترانسندنس دارن و جهان دارن فرق میگذارد خوب در این مفهوم باید دقیق شد به کلی فرهنگ دیگریش. اینجا رد کردن و اثبات کردن خدا اصلا هیچ معنی ندارد کسی خدا را اثبات نمی کند. اثبات کردن یک چیز معقول است خدا به وسیله اثبات کردن من هست یا این چیز مسخره آمیز است اصلا این خدایی اون طرف دنیا نیست که ما اثباتش کنیم این است که زن خدا خورم که جی جی باشد زندگی و عشق و شیرابه به, چسب... به هم چسبنده یعنی زد است یعنی چیز؟ یعنی خون است باده است چیزی این خدا چیزی جز مجموعه به هم پیوسته همه جانها به هم نیست این خدا در شما و من و دیگری در ترک و عرب و چینی و جاپنی و یهودی هست فقط مجموعه اینها که به هم پیوسته شد خدا می شود مجموعی اینها که به هم پیوسته نشد خدا نیست این که میتراس در آنجا گفتیم در این نقوش برجسته شاه رگ را که ارتا باشد ارتا رگ راهو اسم ارتاست خود ارتا رگ رق است رگ که در خون در خونش در همه بدن در همه انسان ها جاری است رگ رق این رگی است که در همه هست همه رو به هم می پیونده. این میتراز که در این نقوش با دشنه این رگ را میبورد از اون سه برگ سبز میروید از همون تصابیر فرهنگ ارتایی یا زن خدایی بهره میبرد چرا بهره میبرد؟ برای اون که درست حقیقت رو بارونه بکنه ببینید از همه اصلاحات میشود استفاده کرد و معنی آن رو بارونه کرد طور، از خود خون رگ از شیرابه و خون خود گاب چیزی پیدایش نمیابد بلکه از بریدن از کشتن از قربانی کردن همه چیز به وجود میآید. ببینید با بکار بردن همون مفهوم همون تصویر به کلی معنا را تعریف می کند. این میتراست در واقع که زردوشتی ها به عنوان میترا در اوستا نگه داشتن. چیزی جز همون زحاک در شاهنامه نیست که بر ضد سیمرغ و خرم که خدایان مهر هستند. برخواسته است اونها این سیمرغ و خرم خدایان مهر بودن چرا همه جانها در به هم پیوستن در مهر پیداش میافت نه در بریدن این فرق این خدای مهر در شاهنامه که سیمرغ است دوسه جا این اشاره کاملا صریح سراحت میشونه زال سیمرغ رو رسما خدای مهر میخوان این به کلی با اونی میتر که زردوشتی ها در ووستا به انوان مهر مینامند و همون میتراس هست این پر دارد، این خدا همیشه خشمگین و همیشه در حالت فوران خشمش هست و همیشه در حال مجازات دادن و کشتن و فلان هست که اصلا با این خدای به هیچ رابطه با مفهوم مهر ندارد مهر هم به مفهوم عهد میفهمد با... می از به مفهوم قرارداد میبند نه به مفهومی که پیوند همه جانها به هم مهر است خدا همه این جانها در پیوستگی به هم, هم داستان رستم در شاهنامه از این اندیشه میترات یا زهاک تأثیر بزف... پذیرفته است رستم باید جگر را بدرد بدرد جگرگاه دیو سفید ز شمشیر او گم کند راه شید این، اینجا رستم جگر دیو سفید را زن خدا را میبرد ببینید اینجا محبوم را کاملا مثل همون داستان میتراز عوض کردن این اون مفهومه نه با این دین میتراییست میساخت نه با دین زردوشتی این مسک شدن داستان اصلی هست که مستقیما خود خون خود جد خود جی خود شیر خود روغن خود باده که اصل چز یعنی پیوند و مهر هستند از خود اینها همه چیز روشنی و شادی و بینش و جوانمردی و نیکی آفریده می شود و نیاز به بریدن یعنی کشتن و زب و قربانی ندارد